جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و قبار اگر به فلک رسد همان خسیس استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد زایه خاکستر نسبی عالی دارد که آتش جوهر الوی است ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نگست که آن خود خاصیت بگست چو آن را طبیعت بی هنر بود پگم قدرش نگفزود هنر بن ما یگرداری نگوهر گل از خار است و ابراهیم مزازر